بسم الله الرحمن الرحیم درس بعدیتون صد الفاعلی او نائبهی مسد الخبری فاعل یا نائب فاعل بیان جای چی رو بگیرند؟ جای خبر و صد مسد خبرشان یعنی مبتداد داریم مبتداد داریم ولی دیگه خبر نداریم به جای خبر چی اومده؟ فائل یا نائب فائل به امثله دقت بفرمایید ما مصافرون اخوکه بزرگوارن اینجا سه گروه از امثله رو آورده است بخاطر این که سه حکمه سه حکمه بسیار مهم رو می خواهد توضیح دهد. در مس گروه اول ما ممسافون اخوک اما الخادم ما مخضول المصابر در مس گروه اول اگر دقت بفرمایید در تمام مسله ما یه چیز رو می بینیم که قبل از کلمه اول، یا ما نافیه اومده است یا همزه استفهام. به خاطر این که این مبتدا ها همشون هم مشتقند همشون اینا چه هستن؟ این کلمات؟ مشتقند چون این ما اومدن ما نافیه یا همزه استفهام اومدن این شرط هست این چه هست؟ شرط هست برای این که فائل یا نائب فائل مسد خبرشان شرط هست که اعتماد به نفی یا استفهام کرده باشن خب. حالا در امثل گروه اول ما مصافرون اخوک امطیون الخادمو ما مخضورون المثابرو ما می توانیم دو اعراب به اخوکا بدهیم یک دقت بفرمایید میگوییم گویم مبتدا هست اخو چه هست؟ فائلش هست چون مشتق مسافر اگر اگر فا اسم فائل باشه فائل داره اگر اسم مفعول باشه نائب اون موقع چیشه؟ شون... اسم فائل عمل فعل معلوم میکنه و اسم مفعول عمل فعل مجهوله پس اعراب اولين است که اخوك رو ما فائل چه حساب میکنیم؟ اه؟ ننائم بیو فائل فائل فائل مصافرون هست كاف که مصافرون اليه هست این یک اعراب این یک و اعراب دوفم ان كه بگو اخو مؤخر هست و خبر مقدم هست چرا؟ چون ما میتونیم جمله رو به این شکل هم بیاوریم بگوییم ما اخوک مصافرون ما اخوک مصافرون ببینید بابتدا با خبر مطابقت دارند بابتدا با خبر چی دارند؟ ولی در امثله گروه دوم دقت بفرماید ما مسافر اخواک اخواک اخوان چه هست؟ موسنه هست ولی مصافرون مفرد است. در گروه دوم دو در گروه دوم دو ما نمی توانیم که بگوییم مصافرون خبر مقدم هست و اخواک مبتدای ماخر فقط یک ایرام میتونیم بدیم. اون چی هست میگویم مبتدا اخوا جاست هست؟ فائلش هست که این فائل صده ما صده چه هست؟ خبر هست دیگه خبر نداریم دیگه خبر نداریم امطیعون الخادمون همچنین ما مخذولون المثابرون همچنین پس در امثله گروه اول چون چون اخو مفرد بود و مطابقت با مسافر داشت ما میتونی چند ایراب بشودیم دوتا ایراد میتونید سین بگیم اخو فاعل مسافرن هست و میتوان سین بگیم اخو چی مبتدا هست میتوان سین بگیم فاعل است و میتوان سین بگیم چی هست مبتدا از دو چیز و مسافرن اگر اخو فاعل بود مسافر مبتدا بود اگر اخو مبتدا بود مسافرون موقع چی بود خبر بود ولی در گروه دوم نه چون که مسافر با اخوا مطابقت ندارن پس میگیم مسافر مبتدا و اخوا هم چیش هست فاعلشه در ما مخذولون مخذولون مبتدا المصابرون ضائبه فاعل هست اما امثله گروه سوم ما مسافرانی اخواک اطیعون الخادمون ما مخذولون المصابرون مصابرون اینجا باز هم چند اعراب میتوانیم بگوییم <تصفيق> اینجا بله اینجا یک اعراب ولی ولی دقت بفرمایید که مشتق که چی که مشتق خبر و بعدی چیست مبتداه ای این خوب دقت داشته باشید ما ما نفسی است مسافرانی خبر مقدم اخواک مبتدايه مؤخر مثل الدفومي مثل اونجا اونجا دو اعراب ميتونيم سيم اینجا اينجا بله مثل اولي در يك حالتشون بله خوب احسنت میدونید چیه؟ باد ما قبلا یه درسی خوندیم اگر زمانی ما می تانیم، اگر فائل ما اسم ظاهر باشه ببینید؟ اگر فائل ما اسم ظاهر باشه فعل باید به چه شکل به کار بره؟ به شکل مفرد باید به کار بره. اینجا مسافران که عمل فعل رو داره انجام میده مفرد یا مفرد نیست مفرد نیست پس چون مفرد نیست ما نمی بگیم بگویم اخوان فاعلش فائلش هست. اگر اخار رو فائل حساب کنیم باید مسافران چی میبود؟ می باید مفرد می بود باید مسافر می بود. باید چی میبود؟ قاعده درسی چند جلسه پیش خوندیم. چون مسافران مسنه هست، متیعون جمع هست، مخزولون جمع هست، ما نمیتانیم اخواک و خادیمون و مثابرون رو فائل حساب کنیم. چون قایده ای داریم زبانی که فایر اسم ظاهر باشه؟ ادتاقا. فعل با چه باشه؟ مفرد. مفرد باشه اینا هم دارن عمل فعلو انجام بیدند فهمیدی الان بریم جلوتر؟ با اون موقع دوی را بیتونیم بشبیدیم مثل امثل گروه اول مسافر مطی مخلول چه نباشه؟ فعل؟ فعل مسافر؟ مسافر که اسم فاعله مخذول هم اسم مفعوله اینا اسم عمل رو فعل رو انجام میدن یعنی ما که فعل فائل رو مرفوع میگرداند و نائب فائل رو مرفوع اینا همین کارو دارند انجام میدن دیگه اون موقع بهشون دیگه اخوا و خادیمون و مصادرون نمیگیم فاعل بلکه میگوییم مبتدای مؤخر مسافران هم میشه خبر مقدم فاميدت القواعد يشترط في المبتدا المشتق شرط اس در مبتدا مشتق مبتدا جامد لا مثلا علي قائم عليون مبتدا جامد مبتدا مش اما ما مسافر اخوك مسافر مبتدا مش بس شرط اس در مبتدا مشتق الذي يرفع فاعلا او نائب فائلين اون مبتده مشتقی که فائل رو مرفو میکند یا نائب فائل را یا صد و مصد خبر که صد و مصد خبر میشه فائل یا نائب فائلی که صد و مصد میشه میگه شرط هست این معتمدن على نفین او استفار که معتمد بر نفی یا چی شده باشد استفار 58 و هشت اذا کان المشتق مفردن و تالیه مفردن این گروه اول و داره توضیح میده. میگه زمانی که مشتق مفرد باشه و خ... اونی که بعدش اومده هم مفرد باشه، مانند مسافر و اخوک هر دوتا چیند جاز یه کوول المشتق با مبتد و ما و فیللا و نائب فیلن صددم و صد خبر. جایز است که مشتق خودش مبتدا واقع شود و ما بعدش فائل یا نائب فائل واقعشان که صددم و صد خبرند. اگر مشتق اسم فائل بود اون فاعل است و اگر اسم نفعول بود. ما بعدش نایب فایل است. یعنی اینکه جای خبر رو گرفتن دیگه خبری وجود ندارد در ترکیب ما مطیعون الخادمو میگویم مطیعون مبتدا الخادمو ولی خبر دیگه نیست فایل مطیعون هست صد مسد خبره جای خبر رو گرفته پس زمانی که مشتاق مفرد باشد و بعدش مفرد جایز است که اون مشتاق مبتدا و بعدش فایل یا نائب فایل باشد و این یکون المشتق خبران مقدمان و ایراب دوم این است که مشتق خبر مقدم واقع شود و تالیه مبتدا مؤخرا و کلمه بعدی مبتدا مؤخر باشد. تا ایراب أما بن جواش إذا كان المشتق مفرداً وتاليه مثنى أو مجموعاً وجب أن يكون المشتق مبتداً وما بعده فاعلاً أو نائب فاعل صدّم صدّ الخبر زمانك مشتق مفرد ما شد وبعد ذل مثنى ينطوي داديمنا بلى توضي إيش ناديم مي جويد زمانی که مشتق مفرد باشد مانند گروه امثله دوم ولی بعد از اون یا جمع باشد هر کلمه بعدی مصنع چی باشد؟ جمع باشد در این حالت واجب است که مشتق مبتدا باشد و ما بعدش فائل یا نائب فائلی باشد که صد ما صد خبر است شست. مثل ما مصافرون اخواک در این ترکیب ما میگوییم مسافر مبتدا هست و اخواک فائیل هست. دیگه نمیتونیم بگویم اخک مبتدای و مسافر خبر. اینجا باید بگویم مسافر مبتدا و اخواک هست؟ فیلش. مطیعون مبتدا خادمون فائللی صد مصد خبر است. مخضول مبتدا مصابول نائب به فائلصد مصدده خبر که قبلا توضیح دادم علت چرا. شست اذا کان المشتق و مثنه او مجموعا و تالیهی وجب این یکون المشتق و خبرا مقدما و تالیهی مبتدعا مؤخرا زمانی که مشتق مثنى یا جمع باشد مثنى مانند مسافران جمع مانند مطعون و مخضولون و ما بعدش هم همچنین باشد و ما بعدش هم چی باشد دیگه اینجا واجب است که بگوی مشتق خبر مقدم هست و اونی که بعدش اومده است مبتدای مؤخر ماننده امطیعون الخادمون امثلای گروه سوم که میگویم مطیعون خبر الخادمون مبتدای مؤخر این بود از درس امروزمان که در رابطه با احکامات جان؟ مسانه بله. و جم باشند یک ترکیب داره بله مسانه و جم باشند یک ترکیب داره که مشتق خبر مقدمه منظور اسم فاعل و اسم فول زمانی که هم مشتق مفرد باشه ولی ما بعدش مسننایجم باز هم یک ترکیب داره که مشتق میشه مبتدا اونی که میشه فاعلش